جلسه شانزده همه رسائل استاد بسم الله الرحمن الرحیم محمد الله الرحمن و سلام علی محمد آقا شدر عدله من حاصل اندر کلافی کنه آرز از در غیر مندیان در را تجربی این خیلی حالا مباقی مضغوز مباحت و نیست مبروزیت از جهت تعلق قبط مکلد بینید مبروزه آیا اعتقاد مکلد بینید مبروزه مجبه مبروزیتی یا نمیشه؟ من یعنی من جهت در انه یون به او انسوه سریلت مع و ف... ده سریلی سین سیده من به توازم کلم خبرات سوه سریلت الارد من و مقام و و آزمان علیه یعنی شخصی که آزم برمعثیت نباشه یقینا یعنی سوه سریده داره قینت مهند بست نیست و این آزا غیر منطلی که آزن مهند مهند خلاق نیست لیکن نهو لا یجدی یعنی اینکه این فیل خبر سوه سری بده این مفیق نیست در این که این فیل, این این فیل حرام شدیه موشه لیکن نهو لا یییکن فعل مح من شبیه هم که ا و معلو میز سوطرالعه در حمت شرینشه؟ چرا نه استخاب و ممته ادا ماکشش فرفعل لای به استفاب و او نفسه استخاق مزمت و بر اون مشهوب این مدی استخاب، بر نفس فید نمیشه مادامی که فیدش طبیل نبوده مارد و من المعلوم انال حکم العقلی استنقاق الزمه انما یرازم استنقاق الاقاب تعلق بالفید یعنی قائده منازمه حکم عقل و حکم بین ما, ما بین در موالیه که این حکم عربی تعلقو فیل نه به فایل و حکم مزمت نصده به نه به فیل تنابراین فیل از فایل مرازمه نمیشه استفاده کرد برای اصلاح حرمتش اندر حکم العربی استقاق این نمائی راض مستقاق علیقاب و حرمت بو شرعن ازا تعلقه به فعل دابن خائل نه این نه در مصدقی شیخ انصاری این نه در مصدقی نه این طور نیست خائلو تفریجم ملازمه دوتا نیست حالا این در پدمایش شما باعث شده که ناینی نا یه مقدار از مبنای شیخنساری فاصله گرفته یعنی الان در نوشته حاملی که سنگیه شیخنساری به تحصیل بین قبع فعلی و قبع فائلی از با این که حدیقتاً نیست قائل نیست نه برای فائل نه برای فائل بلکه مذنبتون نسبت به فائل فائله بعد برن که این که تو ذهن شما اومد دست بشه نا اینی تفصیل شده با یه تغییری که می دیمه شده. و اما موضوعی را رمین از دلیل الابلی که اومد اون تقریب سبر و تفصیل محفظه سبزواری در ذخیره رو خلی و, و برور و دلیل الابلی به نحوه دیگه ای و اما موضوعی را رمین از دلیل الابلی چی گفته یه تعیین الابول اونا قبول نداریم برنمتزم و فیه استنخاب منسازن فقط خوب الواقع خصوص این شخصی که برکش مصادف با آقا شده اقاب داره شعر بلخم داره شعر بلخم اقاب نداره چرا؟ لعنه او اصا اختیاره به اختیار خودش بوده لازم نیست مصادفت اختیاری باشه برگشتشو اختیاره اون با اداده با بست بوده لرنه او از ها اختیاره اونم امیوساده بست او و الواقع یعنی شعار بلخن. حالا محقه دا داشت داشته این مورد نمیتونه اقاب داشته باشه حتی شعار بلخم چرا اقاب دیگر باید شدن استحباب اقاب شعار بلخم ما اقاب رو محروط به یک هم دقیق اختیاری بدونیم که مصادفت و مصادفت با و عدم مصادفت شهر اختیار ما نیست این رو جواب بدهیم. و قول رو کرد یعنی قول محفظ و در تغییر اینکی چرا ما این نمیتونیم باید بشیم این اتفاق و تبلست آقای و الادم لا یحسنو الگناتا به و خارج و نهل اختیاری محقق از هلزواری میگو نمیتنیم بگیم خصوص شارب بلخم اقاب داره بخواد اینکه تعلیق تکلیف بر غیر اختیاری که مصادفت باشه مصادفت که دست ما نیست امر و نمیشه اقاب منوز به این و قول که حاضا ممنون چرا فا اینل و به مالا یرجعو بن اخره اینل اختیار قلیه یعنی بین اقاب و عدم اقاب پرده اقاب باید بر یک فعلی باشه که بین آخر باید برگرد به اختیار ولی با هزار خواسته باید برگرد به اختیار یعنی ما یک کاری انجام دادیم که این کار بعد از هزار واسطه منجرده به یک گناهی شده اقاب بر این آخری که برگرده به اختیار شانند ولی عدم و اینطور نیست ما میخوایم عدم عقاب رو بگیم نه عقاب رو تا العقاب بما لا یعنی اقاب, اقاب بر چیزی که آخرش به اختیار بر نمی‌گرده تبیحه الا ان عدم العقاب لامر لا یرجع الی اخری در اختیار امر هو به ما عدم العقاب معلوم نیست بلکه معلوم عدمه بلکه معلوم مقدم بستن می داده اقاب کردن باید برای یک فیل اختیاری باشه ولی عدم ال نه اینطوری نیست که حتما عدم ال اقاب هم به یک فعل اختیاری اینطوری نیست ما نسبت به شارب به خرد نمیخوایم اقاب بکنیم پس بین مقوله اقاب و عدم اقاب فرق گذاشته اقاب نهایت شوید برگرده به بر امن اختیاری ولی عدم ال اینطور نیست این حالا تفصیل مصمد یعنی این حسن انا تیرگاه آورده بود به مصادفت و عدم مصادفت رو این رو وقتی کرد از که ما منتظم به استفاق مصادف میشیم شخصی که خبیش مصادفها واقع بیده به خواهد اینکه آخرش برمیگرد به یک عمل اختیاری که شب خمک باشه نزا استفاقش حسبت به عباب برمیگرد به یک عمل غیر اختیاری تا قوی باشه و باز قائل به عدم استحقاق غیر مصادف میشیم شارب و به خاطر اینکه عدم اقاق برای یک امنی که به اختیار انسان برمیگرد نهایتا گوبش معلوم نیست به خاطر اینکه قدر متیبکن ثابت اندر اقلا گوبه اقاق به فعله اختیاری گوبه اقاق به فعله غیر ولی عدم و بر فعل غیر اختیاری محض. دانش خوش‌نگو صبح برگرد به بنای عقلا دیگه. خوش‌نگو باید برگرد به بنای عقلا و از احکام عقلایی حکم عقل این وقتی دور باشه این حکم دلیل لوقی حساب میشه. دلیل لوقی استواغا ده همان موارد رو شامل نمیشه به در تردیمه الان گمسن که قرض متیفتنش قرض متیفتنه ثابت این در و العقل اینه که اقاب بر امر بیر اختیاری در اینه. و اما اینکه از اقاب بر امر بیر اختیاری اونم گویر باشه خوبش معلوم نیست. به خواهدین خارج از قرض متیفتنه اگر بناس خودم اقلایی باشه و حکم عقل باشه دلیل ل اطلاق نداره تمام موارد رو نمیگیره ول اکتفاع به قدر متیقنش بش قدر متیقنش حالا اون مال صاهب اصول اونا رو از این بحث نن هچ فرق ندره ما ببین شخص که مخالفت با بضش کرده ما یه داریم بحث میکنیم تفصیل بدیم بین واجبات و محرمات در واجبات بین تعبدیات و توسبیات اینها معلوم نست آخر چیزی تا ایشان گیره. او ادامه چرا؟ همین ها، همین شبهات، همین شبهات باعث شده ساختوسو ماده به تشکیل شده. ولی اونم تفصیلش مردوده، خود شیخم هم قبول نذاره. نه اگه ببین قاعده من نمیگم اینا دارن میگن این میگه عقاب بر عمر غیر اختیاری طبیعه عدم بر عمر غیر اختیاری چی؟ میگه معلوم صبیل باشه چرا؟ به خادم اون مغلایی لطبی مادرین اینو ترجمهش میکنیم. حالا به حرف خودمون نرسید الا ان عدم از اقاب لأمر لا یرجع و بالاخرط الال اختیار غیر معلوم از ملخص این الان فرق بین موارد مصادفت و عدم مصادفت مکلمت که شور به اختیاری بکنه و مصادفه با خم در بیاد مصادفه با وافعه در بیاد اینچون برمیت به اختیار خودش قبیه ولی عدم مصادفت برمیت به اختیاری بخال اینکه این شور به خم بخواسته بکنه اون بکنه اینکه اختیاری این شخص شور به خم بوده شور به خل اختیاری نبوده پس عدم العقاب بر شخص شرب خل در نمیگرده به اختیار چرا اون چیزی که اون اختیار کرده بود چون شرب خل بوده ولی اون چیزی که در اومده شرب خله ما قصدش لم نمیانن و ما وقع نمیخصن آیه از آیات مشکوک پس بر نمیگرده حالا تفصیل مثلث بد نیست بعدا میگم بعد می چرا تفصیلش خیلیه معلومه که ذهن فلسفی کلامی هم خیلی در اون اعقا مراتبه اومده به این اقاب و عدم اقاب به این نه قاهل به فرم شده شخص شار بلخن قصد شربخن رو داشته پس بالاخره به اختیار برمیگرده ولی شار بلخن قصد شربخن نداشته قصد شربخن داشته پس به اختیارش برمی گرد آخرش چرا <تصفيق> توهم مز... <طبعه> بالاتره <تصفيق> از تو جزم به اقاف دارم به خاطر این مخالفت با مقصودش کرده و تکالیف واقعیه با علم من منجز میشه ما حکم واقعی منجز رو مخالفت کردیم از توهم خیلی بالاتره از <تصفيق> توهم می‌شه قبیضه می‌شه اون رو ارتقا نده در داره اون تپذل می‌شه خب یعنی مواد مواد نه وقتی انجام نه عکسش که نیست که اگه اون نکنه خب واهمت اینه که توهم این که این قبیح هستری رو نداریم چرا بحث از تفسیر دیگه بیان بگیم یکی مصیقه عقاب هست، یکی نیست. عقلش هم عقل عقل چطور داره تفسیر میده؟ به خاطری یکی به اختیار برمی‌گرده، یکی به اختیارش برنمی‌گرده. عقاب بر امر اختیاری اشغال نداره. ولی عدم اقام در امر غیر اختیاری اونم قبیح باشه نه. صدا از شارب الخلق از شارم بلخم منویزه تفصیل بردی این <تصفح> حالا الان ببین مصنف میخواد این تفصیل و تفصیل بذار تفصیل بشه بعدا آیات بردی کمایش و بری حالا شاهدی از روایات هم میاره میگی اینطور که برداشت من این باشه کما یشهد و بهی یعنی یشهد و به تفاوت به استحباب و عدم استحباب نسبت به مصادفات و عدم مصادفت این تفاوت می در روایات هم هست در روایات هم سواب و اقاب معلق شده و یکی هم در ایرخی های کسی این بسازه بعد ده نفرین مسجد بیا نباید و یه نفر دیگه مسجدی به سازه که میلیون ها نفر اونجا نماز بکنه ثواب اون بیشتر از اینه اختیاری هم نبوده هر دو پول خرش کرده یا کسی یک سنت سیعی رو ابداعش کنه به یکی ده نفر عمل بکنه به یکی هزار نفر عمل بکنه اون شخص که سنت سیعی رو ابداعش کرده هزار نفر عمل میکنه این گناهش بیشتر از اینکی اختیاری هم نیست تمایش هدو به تفاوت الاخبار الوارد و توفیعن منسن سنتن حسنتن ان له مثل اجر من عمله به ولو هزاران هزار نفر باشه اگه ده نفر باشه ده نفرش ثواب میدن اگه یک میلیون نفر در این مسجد نماز بخونه یک میلیون ثواب بشینده می وقتی کتاب مرتبه شيخ هماره کتاب نوشته همه میخوانن بعضی کتاب نوشتن که نمیخونن تمام اونا که در سؤال مکاتب میخوانن دوامش میشه این طنطاری اختیاری هم نیست اصلا در اختیار خودش نبود و من سننته سیعه دنگال له مثل و من عمده اونم که کار بعدی بکنه و این سنتی بشه دیگران بشه هم بکنن اگه کمتر بشه هم بشه اقابش کنن اگه بیشتر بشه هم بکنن اقابش بیشتر تحت اختیارشان هم و ازا فرزنا هم نشق خیم سنا سنتا او و تفقه اتفاقی باشه که در تحت اختیار من نباشه و تفقه کس در پل آمده به اهداهما و بِللَّذِي عَامِلُ بِما سَنَّهُ الْآخِرُ اتفاقا یکی عامل بیشتر داره یک عامل کمتریه و ان ثواب الاولی او عقابهی اعظم حتی تاریخ بغداد شعر ان للمصيبه اجرین و للمخفه اجر واحد یعنی این قایده یام مغهای دارن و های ما مییم ازش استفاده که از انقدر مسیب جین. کسی اشتهات بکنه موسیب باشه در فتابوا با دو تا ثوا داره یکی به خاطر اشتاد زحمت شر تا زحمت کشیده. و یکی به خاطر حسه. با اون کسی که اشتعات میکنه ولی به خطا میره فها و خلاب واقع در میاد اون یک اج داره اونن به خاطر استادش چون حسابه نداشت. این مجبوب در کلاب اندل ملی وجره، برای مخته از دیدن و وقتش نهرن این هم میگه مشهوره روایت اینا نیست ولی در اول لعالی اینو مصمدش کرده که رسنده به پیامبر علی مشهرم اسلام که این روایت اگه روایت نبعیم باشه ساخته یا آمه است آمه بین معاویه و بعضی هم فرم معاویه مشهد مصیبه ولی یزید مشتهد مختلف دارن در کتاب های رجال نگاه کنید چقدر از اینا بردن خالد ابن ولی هم مصیبه هم مشتهد دو تا عشان. هم بر زنا هم بر اینکه اشتهای کردن و چیزهایی دیدید بره بنابراین قاعده قاعده آمه است شیخم قبول ندارید ولی حالا در کتاب های ما اومده اصابه یک امر را گهر افیاریه برش ثباب مترفت ول ابارو پی امثال ذالک امثال ذالک یعنی ثواب اقاب منوض به یک امر غیر اختیاری باشه پی طرف ثواب و اقاب به حد تواس و به واریات دیال که ثواب اقاب بر یک امر غیر اختیاری مطلعات كلمشه اصلا این همه چیز باید منوط به یک امر اختیاری باشه. به میگه ثواب و اقاب در یک امر غیر اختیاری مطلعات كلمشه حالا سوابش تو از باب نقصد مانی نباشه ولی اقابش این نیاز خودیه داره که بیان بگیم اقاب زیاد میشه این با ظاهر و از آیات نمیسته با ظاهر یعنی عرض وقتی حکمی کنه بلی که مصادف واقع محکوم به قبعه و مصادف نباشه محکوم به نیست اینها ب میشه در محل بثمان و ظاهر و انل ان نمایت هم و مزمت من حیث و یعنی شقا و فاهر و خصسللیلتی یعنی ارنهای که نه اسم و هر دو همشار بل همشار بل هر دو، لا بی استحقاق المظمت علم فعل مفتوع بکنه این محصیت هم و نه اینکه استحقاق بر فعلی باش که ما قطع به محصیت بودنش داشتیم بر حقا محصیت نبود و ربمایو ایید و زالگ یعنی استحقاق شخص مصادف رو تأیید میکنه این مطلب که یک همه ویشدانی ما هم همینطوری و ربمایو ایید و استحقاق و اقاب المصادف عن نو ند دو من عن یک امر ورشانی ما در باطن خودمونم فرقی قاهلی می در مراتب زن بین شخصی که مصادف با واقه در بیاد و بین شخصی که مصادف با واقه در نمی اون شخصی که قدش مصادف با واقه در بیاد مزنمتش میکنیم یا بیشتر مزنمت میکنیم از اون شخصی که قدش مصادف با واقه در نمی و امر وجدانی هم که نمیشه این کارش کرد بنابراین معید این حسن عرض به خوبه این فعل یا این فائله یا خمس سریل و امسال اینها که دارن اصباد میدونه اما نجدو من الفسنان الفرق از این مرتبت زم سینم امسال هو الواقع یا قطعه هو الواقع و بینم از دن یو سال الا ان یو الا اینکه بگیم نمیشه امر وجدانی باشه بیاییم بگیم شخصی که مصادف باشه مذنبت بیشتری داره و شخصی که مصادف نبوده مذنبت کمتری داره یا اصلا مذنبت نداره اینو نمیشه بگیم به خاطر این هر در منکرات اقلاعیه اشکال مند ولی در احکام شرعیه و منکرات شرعیه درست نیست چرا به خاطر اینکه ما که میانم تقریح میکنیم به خاطر تشرفیه اگر کسی یه کار زشتی بکنه مصادفه با واقع در بیاد و کسی کاری بکنه و مصادفه با واقع در نیاد اون شخص مصادف رو بیشکر میکنه به خاطر تشرفیه نفسانی اماست و این در شاره مقدس محاله بنابراین بین قضایه های و, و قضایه های باید قاعده به فرق پس نمیشه از وجدان دلیل پیدا کنیم برای این در مواد احکام شرک شخصی که مصادفه مستحف قابل شخص مصادف نیست مستحف قابل نیست یا حتی مذنبت این تفصیل رو میخواد بگه در شرعیات درست نیست در اقلائیات مانعی نداره در بین مردم این اونم اونا میکنن یعنی شعاره مذنبتیش میخواد برای چی باشه برای تشفی باشه تشرفی برای فردان یک چیزیه شعاره که فاقل چیزی نیست پس نمیشه اینو یه تفصیل قاعد شد من حیث المجموع در این با مطالبی که شیخ داره میگه محصلش اینه که انسان وقتی قطعه به چیزی پیدا بکنه یا مصادف با واقع میشه یا مصادف با واقع نمیشه و که در تقدیل یا ما بر طبق اون قطعه اون عمل میشیم یا بر طبق اون قطعه عمل نمی کنیم. که چهار صورت استیان و تجربی انریاد و اطاعت حاصل می شدیم یعنی کسی قطع پیدا کنه به چیزی و به طبق قطعش عمل بکنه و موافق با واقع در بیاد. و صورت چهار دانه که دیوزوکی در اینه که اینها خیلی از که ظاهر بحثا مباحث تکریفیه مباحث بزیشتی می میشه، بکنی ده تا از سروعاتقی هست که این باب میگرد به مباحث تجربی یکی از عمده ترین بحث در این باب اینه که در باب تجربی آیا اختصاص به قف داره یا نه اختصاص به قف نداره چرا در باب قف آوردن این باب کردن خب در باب زمون و اصول عملی هم بحث کنم دیگه مثلا عمده اینه که تر اختصاص قع نداره تجربی اختصاص به قطع نداره در بیل موارد قطعع هم حاصل میشه و میتونید به دراسات آای خویی به مسباهصولش مراجعه کنید مصطفا بحث کنه. ایشون قائل به اینکه اختصاص به قطع نداره به این معنا که در تمام موارد هجت شرعی حاصل میشه تجربی. یعنی عنوان کوندی که برای روز کرده مخالفت با حجت میخواد اون حجت قصد باشه میخواد امارات باشه میخواد اصول عملیه باشه تماما بدون تفسیل در اصول عملیه قاعد شده هر کسی با حجت شرعی مخالفت بکنه از موارد تجربی هستان باشه مسلم. بعد از ایشون 600 قاعد شده به اینکه باز تجری اختصاص به قطر نداره بلکه در قطر جاری میشه در امارات جاری میشه و در اصول عملیه قاعده به تفسیل شده اصول عملیه علاق اسمه این در حلقه دو بو خصفه کنید که شبهه براتون تو اصول عملیه دو قسم در اشتلاه شهیستان در اصطلاح شایسته اصطلاحات خوبی هم هست اینطوری میگه اصول عملیه مؤمنه اصول عملیه منجزه از این چهار تا اصل عملی که داریم دوتاش مؤمنه و دوتاش منجزه یعنی دوتاش رفع تکلیف میکنه ترسیزه دوتاش اثبات میکنه، استثاب و احتیاط منجزه براعت و تخیر برخصه این دوتا رو میگن مؤمن یعنی ما رو ایمن می از اقاوی. در موارد براعت و تخییر عقابی در کار نیست در موارد استصاب احتیاط منجز یک تکیر بر عباده مکلفه تأمین در کار نیست میگن اصول عملیه منجزه حالا ایشون قاهل شده به که در موارد اصول عملیه منجزه تجربی داخته ولی در موارد اصول عملیه ی مؤمنه از جربی راه نزده در مصلح موارد راه داره این دو تا مبنا مبنای ثقوم یه مبنای دقیقتر از این دو تا مبناست الان وقت نیست رو تقریبش میمونه برای فردا مثل که الان میخوام بگم این فروعاتی بود که دیروز داشتیم مینوشتیم که وقت تمام شدن پنج دقیقه از وقت باقیه این فروعات رو آقا خودم من ما نقل قول کردیم از آره. مناقشه در نکردیم تگه باقضیه اینکه مناقشه مخطیر و فایده ای هم نداره و تقریبا شبیه دیر فهمیه ولی حالا قایله قایله میگه در خوندن عملیه طلب که این مسمطا دارن میخونن باید اشتاق به اقوال و مبانی باشه در یه حد 50 درصد اشتیاق باید باشه آیا اختصاص به کاربرد داره یا نداره خوب اختصاص به قد نداره حتی شیخ انصاری هم اختصاص به قد نداره مفهومه این قایله به اطلاقه شهید صدر به جمله صاحب رو قاعده در اصول عملیه قاعده به تفصیل شده برای یک تفسیم فرمیتری داره که فردا میگم اون وقت میبره امروزا دید رسیدم. حالا اون فروات که آهان داشتن می نوشتن برای اینکه بحث تجربی مخالفت قطع ما با واقع با یا خصوص اقابه که اعلام دارن بحث میکنن و حرمت شرعیه یا نه تجربی اثر وضعی هم داره این خیلی مهم تر از اون که دارن میگن مثلا ماه رمضان، بالای منبر در قافیه گیر کردیم و روایت یادمون رفته مجبوریم دروغ ببندیم به خدا پیدا من محفرم هست اعتقاد به حرمت کز داریم اعتباد به کهز این مطلب که میخواد بگه. مثل خیلی از کرامات که برای علمات جعل میکنن بالای منبر چقدر تا صاحب کرامات میشن بعد از خودشون همه این اعتقال به داره تو هیچ جا ننوشتم بعد میگه و با بان از معلوم با. معلومی نه راسته روایتی رو ما نرمه کردیم بعدا به اعتقال این دروغ بعدا نه نخیجه معتبره در این موازهای مختل صوم هست یا نیست؟ خب از سر وضعیه تجربی بحثایی رو اقاب نده اقاب هیچ اعتقالی به فقیه نداره ما در دنیای مردم حکم می کنیم کاری بعد از فوتشون بعد از خودشون نمازشون می کنیم و کارشون می کنیم بعدا دیگه تحلیل متقللی می دیم کاری به فقه ها نداره برزرگ چی میشه و آخرت چی میشه شه و هیچ ما نداره ما دنیای مردم با ماست اینکه که استحفاق و اصل اقاب و تجسس و مهمار و امثال این رو ما بیان بحث کنیم در هیچه کار ما نیست رفتی هم به ما نداره اون مانو متکلمین اونا باید بگن چی میشه ما داریم میگیم این شخص مکدف هست نیست آیا این کار انجام بده یا انجام نده همین در همین هست. آن این شخصی که اعتهاد رو کهیز داشته خبان از صدقان این روزه شو باید پضا بکنی یا مرکنی این یکی فرق فرق دوم اضاوت هر رجال زوجت هر حائز خبان ادم و حیزان. این باید کفاره بدی یا نده مخالفت قفش شده یا در نماز انسان دعا کنه و طلب حرام بکنه دعا کنی که خدا توفیق دوزی به شما بده و امثال این توفیق محرمات کبیره کنه آمه خدا از شما صرف میکنه اینا یا درست نماز رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه هم جواهر هم مستمسک، هم در تحرین ها مزهر. از موارد تجربیه نماز باطل میکنه؟ یا باطل نمی کنه اون مسئله شریعه مبتنی به بحث تجربیه بعدن, بعدن ببینه که حرام نبوده حالا اون از نگفتن به خاطر اینکه اصلش اصلش تجربیه؟ شما از خدا محظمات نمیخواید؟ خواستن محظمات از خدا خودش نفسش تجربیه اون خاطر نگفتن بعدن معلوم بشه این حلال بوده. اونا لازم نداره است مثال ثوم فر به قصد الحرام و تبایین عدم حرمتی مسافره حرام رو اعتباط داشته بیش گرفته بیدید که گرفته داره میره و خشم و ها و با آن نه اونجا حرمت نداشته اون در تبلیف کرد و خیلی هم مثال بعدی به اعتقاد به قصبیت مکان داشته نماز خونده و طبعی عدم و قصیه بعد مال خودش بوده وقتی بر کلاب بوده امثالی شخصی در مسافرت در تبدیل به اعتقاد اینکه که جنوبه نکرده بدون قصد امام جماعت شد. بخواد اینکه روش نمیشه باز کنه. بعد که این برگردنش نمیشه نمازش درست هست یا درست نیست نماز دیگران چی میشه این هم مورد بعدی یا اعتباد به وظیفه استراریه پیدا میکنه اعتباد پیدا میکنه که وزیفهش تیممه محضاره که میگه من خوشم نمیاد چون تو مهمانی مردم شکل میکنه باز حضور میگیره نماز میخونه فبان اگه وزیفش اصطراحی نبود به همون وضوع بوده اینم یک فصل برگشت با تجربیه هر تجربی میشه آره خیلیه یعنی سرایان داره هر سرایان داره در صرف در باب نکاح شخص اعتباط پیدا کرده که این زن در اتنس. در هم خب عقل حرام ابدی میاره فیلیوم عقل کرده به خاطر اینکه میهون دعوت کرده بودن نمیشد هستن به هم بزنن اینم به خیلی براش معنا نداشت اون مردم هم این داریم، دارید بعدن فبان اگه این در استه نبود؟ آیا این نکاه قبلی درست هست یا نیست آیا حرمت ابدی رو میاره یا حرمت عبدی نمیاره یا اعتقال به این پیدا کرده بود که این ذات بایش عمل کرده بعدا ففان اگه ایز آتول بر تمام این موارد برگشتش به تجربیه یعنی مخالفت با مفتوع منجز که بر خلاف واقعا در بیان در تمام این فروعات فقی مبناش برگشتش به تجربیه در تجربی شما هر نتیجه رو بگیریم تمام این فتاوا برگشتش به اینه ببینم وزید رو سکار میکنیم بنابراین در کتابهای اصولی باید بگن آثاری که بر تجربی متردت میشه اینه که آیا احکام وضعیه در موارد تجربی همون آثار تکلیفیه رو داره یا نه فرق داره بعضی از مثالها رو میزنن شخص متجربی از ادالت ثابت میشه یا نمیشه ولی اون مثال مثال نادره بحثای عمدهتری داره که انسان چه به یک تکلیف پیدا بکنه بعد مخالفت بکنه بعد معلوم میشه که برخلاف واقع نبوده در این موارد اون احکام وضعیه آیا مترتد یا مترتد نیست اعتباری هستیم احکام وضعی اعتباری نه ممنونه احکام اعتباریه ما وقتی اعتقاد داریم بگیم سفر حرامه سفر حرام باید روزه رو دیگی. بعد تجلی کردیم روزه نگرفتیم بعدا این سفر حرام نبوده حالا روزه که گرفتیم کافی هست یعنی خیلی از فروات برگشتیش به باب تجربی بنابراین یک عنوان عامی ذهن باید پیدا بشه مخالفت با حضرت شرعی از نظر تجلیبی و وضعی چه اثری و چه نتیجه برش مترسته میشه روی این فروات ها فکر رو بکنن فروات پیدا کنید بعد تا اینجه اینها ده مورد نشد سه تا از مثال ها مونده اینها را فردان اینجه بخشان این ساعت دوم رو یه فکر اساسی بکنم این مسجد مانوزا این ما راحت بود جدول بریم یه مزدی اونتر بریمش برابر خود تاثیر خیلی بزرگه اگر اینکه فرشته ها به ساعت 9 رو بریم بعدین سر و این دیگه لازم در